صلی الله علیه و علیه و, علی و سلم سی ناموس الدهر و امام العصر خجت ابن الحسن العسکری المهدی اروازم قطراب مخدمه خدا حال الله ال عدای مجموعین من الان ال بیام یاوم دی خوب شب بیست و پنجم ماه مبارك رمضان خدا رو به آبروی حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد ام. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید امر فرج اون حضرت رو اصلاح و نزدیک فرماید آه. یه سلامات دیگه مرحمت بذاره خب عرائض ما در این شبهای نورانی ماه مبارک رمضان یه شرح کوتاهی بر مواعض و فرمایشات دورربار امیرالمؤمنین علیه السلام به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در نهج البلاغه نامه 31م و, و شبهای قبلم عرض کردم که این نامه سراسرش مملو از مطالب حکمت‌آمیز که امیر به یادگار گذاشته از خودش برای فرزندش امام حسن مجتبه دیگه یکی دو فراز دیگه از این نامه بیشتر باقی نمونده حالا ما یه چند سالیه همین شرح این نامه رو من تو این ماه مبارک ارز میکنم دیگه فراز های آخر نامه که تو این چند شبی که باقی مونده حالا یه چند جمله شم ارز میکنیم دیگه به همین اکتفا میکنیم امی شب به این جمله میلسیم فرازهای پایانی نامه میفرماید که وعلم یا بنایه انرزقه رزقان میگه که بدان فرزند دل بند من که ما دو تا روزی داریم روزی دو گونه است. این فرمایشو حضرت امیر شاید مکرر فرمودند تو همین نهجل البلاغه که سید رضی جمع کرده سه بار این فرمایش اومده یکی تو همین نامه است دو بارم تو کلمات قصار چون سید رزی که این کتابو رو جمع وری میکرده واقعا چه سعادتی داشته این مرد یه کتابی رو تعلیف کرده که الان تقریباً همتراز قرآن به حسابش میخورند واقعا عجیبه ممکنه خیلی چهب و خیال کنند که نحج البلاغه رو امیر المومنین نوشته الغاب عجیبی هم به نحج البلاغه دادند اخو القرآن و اینا بهش لقب دادند برادر قرآن و. این کتاب رو سید رضی در سه بخش تنظیم فرموده یه قسمت خطبه‌های های امیر المومنینه که همین های حضرت که مثلا اونایی که پای منبر بودن اینا رو نقل کردند. یه قسمت نامه‌های از حضرت امیره که خب مکتوب بوده و بود. فکر میکنم حدود هفتاد و نه تا نامه است. که سید رضی تو این کتاب آورده این نامه 31مه یه بخش پایانی هم داره که کلمات قصاره جملات کوتاه که نه نام نه خطبه است که نام حدود مثلا کمتر از 500 تا 480 و مثلا اندی بم چه که شماره هم داره مثلا من امروز تو کلمات قصار شماره سی و, و تقریبا همین مضمون و گفته باز تو کلمات قصار گریست تقریبا همین مضمون رو گفته یعنی این جمعه فقط تو نهجل بلاقه سه بار اومده حالا ممکن از فهمی جای دیگه هم بله کلام اینطور نیست که تکراری نباید باشه خود قرآن هم اینطوریه خیلی آیاتش تکرار شده بعضی مزمونهای قرآن شاید پنشیش بار تو قرآن اومده حرف خوب آدم باید بزنه تو واقعا بشر نیاز داره که حیبش یاداوری کنند اینطور اینه که بگه میدونن نه دونستم کافی نیه خدا تو قرآن میگه فضا کلمه و خب یه حرف حق رو نمیگن میگن همه میدونن نه خب میدانن اما تذکر اثر داره شما ممکنه که این مطالبی رو که ما اینجا یه ماه میگیم بدونی ولی اینجور نیست که شنیدن اینا بی تحصیلو بشد. بعضی میگن آقا مگه چی میگه نهایت میگه دروغ نگو دیگه ما اینا رو فولم این نمیاد میگه ته تهش میگه مال حروم نخور دیگه میگه من اینا رو هفتسم میخوای منم برات بگیر بعضی خیام میکنن چون اینو میدانند شنیدنش اثر نداره نه اینجوری نی خدا میفرماید فزکر به پیغمبر میگه یادآوری کن تکراری بگو ذکری نگه تکراری بگی این مکردر بگی الان این نمازی که شما میخونین تکرار دیگه مگه جور با جور که نیست که شما الان هفتاد ساله پنجا ساله یه جور نماز میخونین اما اثر داره. این دارینی که اینا اثر نداره که یه زیارت آشورایی که میخونین تکراریه بعضی مثلا تو یه روز سه بار زیارت عاشورا میخونه اثر داره فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین همین یاداوری ها تاثیر داره خدایین من یه یه شب اینجا براتون گفتم آدمی زاد هر چی پاکتر باشه موعزه رو بیشتر دوست داره همه چیزای تکراریه، موارد چیزای ت... علم که نیست ما اینجا که اینجا انتگرال یاد میدیم. شما میگی آقا من اصلا انتگرال بلد نبودم، ما رمزوناتم بهیتلسان یاد گرفت. نه ما این انتگرال یاد نمیدیم که. می‌تواند بگم یا یکی بگه مثلا من برنامه نویسی کامپیوتر بلد نبودم، بهیتلسان یاد گرفتم. نه است اما آدمای پاک دوست دارن از ورامین میاد پای مویزه میشن. داریم ها مثلا آدم از ورامین من یه ببینیم از قذوین میاد پای مویزه میشین از کرج میاد پای مویزه میشین ولی که دوتا خونش اون برتر میگه من این رو همه رو فولم هر هرچی انسان تر باشه مویزه رو بیشتر دوست داره امیر امیرالمومنین به سع سعت ابن سوهان میگفت ازمی خیلی عجیبه به شاگرد خودش یه روزی بهش فرمودن که چون خوشبیان بود سع سعه خیلی خوشبیان بود سع سعت ابن سوهان فوقلاده اینم قدرت بیانم یه چیز خداداد داده هم نیست این خوشبیان بود دیگه خوب میگفت حضرت فرمودن که ازمی منو معزه کن اونم گریه کرد و اصلا یه آخار گفت یا من چی بگم آخه جلو شما اصلا گفت من چی دارم جلوه گفت نه نراحت نشو تو شنیدن یه اثری هست که تو دونستن نیست یه <تصفيق> جاده میدونه اما یه قضی که میشنود زیر رو میشه، به هم میریزه همونی که میدونه گفت خیال نکن بعد یه چیزی بگی که من تا رو نشنیده باشم نه همونو تو یه جوری میگیم اثر داره. یشب براتون گفتم پیامبر به جبریل میگم من موعظه کن از خودش پایین تر کسی که سجدهش کرده اصلا افت ندارد یه که اصلا پایین ترم هست یه چیزی میگه موعظه میکنه. حالا این جمله سه بار تو نحجه بلواقع تکرار شده افت ندارد حرف،, حرف خوب تکرار بشه که ایراد ندارد همین افطاری که, هم که میکنین تکراریه دیگه عادتون نمیاد چون هیچ میگه آقا من از شده شب دارم افطار میذارم دیگه. چون لحظه شماری میکنین که افطار شه همون همون نون و پنیر و سبزی و هم چون تغذیه <تص> است دیگه جس نیاز داره که تغذیه بشه روح هم نیاز داره تغذیه بشه همین خوابی که میرین تکراریه ولی همه دیگه وقتی یه خورده دیر بشه دیگه خمیازه می کشند نیازه دیگه این... نه ما دیگه آقا من هر شب میخوابم دیگه کلافه شدم نه لحظه شماری میکنه که متقابیارم بخواب وقتی خسته میشه تکراریه هر تکراری بد نیست این همه اینطوریه وعلم یا بنیه انر الرزق رزقان حضرت می فهمید پسرم اینا بدون که روزی دوتاست رزق تطلبو یه روزی میاد اون دنبال تو میاد پیدات میکنه و رزقون یطلبو که یه روزی رم تو باید دنبالش برید حالا حضرت تقسیم میکند روزی رو به دوتا معنی کردن اینم شاید سخت باشد یه روزی رو میگه اون میاد سراغتو یه روزی رو تو باید دنبالش بری روزی های ما هم همینطوره دیگه بعضی روزی ها رو ما باید دنبالش بریم مثلا کسی اگه تلاش نکنه همین که خدا میگه لی سلل انسانه الا ما سعا. انسان تا تلاش نکنه تا کوشش نکنه به دستش نمیارد. باید بری دنبالش. روزی ها اما باید تلاش براش کرد عرق براش ریفت. اما بعضی روزی ها نه مثلا ارث دیگه حالا بگن یه دفعه آدم یه بابای پولدار داره یه ارسی بهش میرسه رسه تو خونه خوابی را میاد میادی چه دخوا. چقدر ارزش میشه مثلا یک یه آقایی رو میگفتن دویست میلیارد ارز بود 200 میلیارد ارز بود یعنی تونبالش نرفته که یا یه وقت مثلا یکی زمینی میخره یه دفعه بغلش اتوبان میفته لیره میشه خودشم اصلا خودش قبر نداره. میان میگن خبر نداره میام بهش میگم خبر بده ایستم میگه نه میگم برو الان لیره شده برو, برو. اوتوبان کنارش افتاده میگه ای من از اونجا که بیا شد دیگه آقا خابیده بود تو خونه یه دفعه شد دیگه الان خورد کرده دیویس متر دیویس متر میفروشه یه روزی رو میگه بعد تو دنبالش بری یه روزی خودش میاد دنبالت تو قرآنم هم اینطوره بعضی این وقتا خدا میگه تا تلاش نکنین نمیشه همچینه میشه خونده لایسال الانسان الا ما سعى بعضی جهام میگه من یک یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب همین روزی که این که اردور گفت همینونو گفت همینا تو قران هست یعنی اگه من بخوام میتونم یه مشت آیه بخونم که اون وره میگه میگه تا تلاش نکنی نمیشه یه مشت آیم بخونم که این وره میگه میگه اگه تقوا داشته باشی از اونجایی که حساب نمی کنی من روزیت میدم مثلا تو خونه خابیدی میدم توجه بدم خدا دست و بالش بسته نیست که یا آقای اومد به حالت انکار به این نگاه میکرد من گفتم آقا شما شغل چیه گفت فلان گفتم حقوق چقدر گفت اینقدر؟ گفتم خود سی سال چقدر حقوق گرفتی؟ جمع زد گفت انقدر گفتم اگه هیچی خرج نکرده بودی؟ انقدر داشتی؟ الان فقط خونه چهار پنج برابر اینه. گفتم دیگه من بقیه رو چون چ تو اگه هیچی نخورده بودی؟ هیچی نخورده بودی همه رو پس انداز میکردی. الان انقدر داشتی. اما فقط خونه ای که توش میشینی؟ افش برابر این قیمتشه این اک کجا اومده اونجایی که حساب نمی کنی اومده دیگه تو دیگه اینا رو که حساب نکرد و تو اول حساب می کردی من همه این حقوقامو رو جمع کنم میشه شه انقدر سی سالم دارم کار میکنم انقدر می شود به این توجه بگم اما خدا میتونه آقا تو یه دونه معامله همه این رو جبران کند همه این که شما تو سی سال دارو بردی تو یه معامله تو یه د اونو که اصلا شما روش حساب نمی‌کردی به خاطر این خدا میفرماید اگه تقوا داشته باشین من الا هم در این رو انگشترشون می‌نویسم نه ببین میگن هر کی این رو انگشترش بنویسه روزیش زیاد میشه اگه ناراحت نمیشیم من میگم نه روزیش زیاد نمیشه چون هر کی تقوا داشته باشه ببین ما خودونو می‌ذاریم کنار خود آیه رو رو انگشترمو می‌نویسی رو انگشترش می‌نویسه که من یت تقلا یج الا نماز قضا میشه میگن خب این تقوا که تو نماز صبح قضا میشه میگه آقا انگشتره که خب میگم انگشتر خوبه بچم میگه اما تو روزه نمی‌خوری چی نه ببین هر کی تقوا داشته باشه اصلا انگشترا هم نداشت باشه بچم میگه حالا الان که میگن که مثلا فرض کن این انگشتر و حاجوسه شهید نوشته اون که دیگه لیره میشه میگن حالا اون نوشته به تو چه ببین؟ <تصفح> چون میگه؟ یا میگن دست آیت الله بحجت بوده این انگوشتر دست آیت الله بحجت باشه روزی شما رو زیاد میکنه ما اینا رو بیشتر قبول میکنیم تو من بگم آقا نماز تو اول وقت بخون روزی زیاد میشه اون آیه داره اون رو میگه اون آیه میگه هر کی به پدر مادرش احسان کنه روزیش زیاد میشه این میگه این انگشتر روش این آیه نوشته شده خوبه این انگشتر روش این آیه نوشته شده ذکر به علاوه اما اون آیه میگه هر کی نمازشو اول وقت بخونه من روزیشو زیاد میکنم پس روزی دو تاست یه روزی که اون میاد سراغت حالا ما گفتیم عرصه مثلا گفتم یه چیزی بگیم به همه قبول کنم یه دفعه عرص رسید به این توجه ما گفتیم یه دفعه یه زمینی مثلا کنارش اتوبان افتاد مثلا یه خونهی شما داشته یه دفعه اومد توی تره اتوبان قرار گرفت لیره شد یه دیگه تجاری شد نرفتی دنبالش او سراغ شما آمد به خاطر این به پسرش میگد که نه برای طلب روزی هرس بزن اعتدال نه تمبلی کن چون دون روزی هست بعضی جاها تمبلی کنی یه روزیایی از دستت میره اونا رو باید تلاش میکنگی بعضی جا رو هرس هم بزنی یه روزیایی به کفت میاد نه اونجور هرس بزن ندار موتدل با روزی رو خیلی خدا از ما روزی نخواسته روزی ما رو تقریبا تضمین کرده همش هم تو قرآن گفته که من روزی شما رو تضمین می کنم مثلا به پیغمبر میگه که لا نسعدو کر رزقا آیه قرآن من از تو روزی نهنو نرزوقک من روزی تو پذیرفتم پس ما چی خواستی میگه من از تو بندگی خواستم روزه ما رمضان با خودتونه. خدا نگفته روزه ما با من، نماز صبحتون با من. با این توجه بمه. نگفته که نگران نماز صبحت نباش، اون با من. گفته نه نماز صبح با خودته. اما روزیت با من ما اون اونی که وظیفمونه، بهتون کردیم، رفتیم دنبال اون که خدا تضمین کرده. حالا مردم اینجوریه. اونی که به عهده خودشونه رها کردن، اونی که خدا ضمانت کرده رو شب و روز دنبالش میدوند حالا همین مضمونو عزرت توی کلمات قصارشون هم گفتن یبن آدم اینجا اینطوریه چون دیگه خطاب امام حسن نیست گفته آدم زاد پسر آدم ار رزق و رزقان این همون رو گفته رزقون تطلبو و رزقون یطلبو کن یه روزی که تو باید دنبالش بدی یه روزی که میاد و به تو میرسن این یه معنا و من اگه اجازه بدید این کلام رو دو جور معنی میکنم این یه معنا یه معنام اینجور رو عرض میکنم که عواملی که این خیلی هم از من میان میپرسن شاید تو همین مارم از اون چقدر اومدن از من پرسیدن دیگه اینو کامل تنظیم کردم عرض میکنم عواملی که روزی انسان رو زیاد میکنه به دو دسته تقسیم میشن. یکی تلاش کوشش یکی از چیزهایی که روزی آدم رو زیاد میکنه نیکنم تلاش کنه کوشش بکنه بعضی, بعضی فقه از خود آدمه من ندام چه تعبیری از این بکنم یا ها ما هن ماره تنبلی شونه آدم های اصلا تنبل هن مثلا کمه من میگم خب چی تعطیل میشی میگه چهار بعد از زور در... میگم خب چهار بعد از زور یه مطوری بگی برو توی این پیک تا هشت شب یه دوری بزن حقوقت میشه دو میگه آجه ها من لیسانس دارم آجه میگه اصلا شما چی میگی؟ میگیم خب چهار تعدیل میشه بیا حسابداری دیگه بیا تو این مغازه میگه دیگه خسته میشن میگه دیگه میبرن چهار که میرم میفتن دیگه بزن تمبلن بعدی بزن سرکار نمیرن یه اما خیریهی که ما تو محلمون داریم به یه خانواده ما کمک میکنیم شوهر این سرکار نمیره ما بزن و بسهش ای hey, میگم قط کنیم میگم آقا چرا قط کنیم خب اینا چی بخورن <تصفح> نمیره سر کار دیگه سه بار چهار بار ما براش کار پیدا کردیم برای همین آقا همین دو روز که میره میگه من کمرم درد میگیره دیسک دارم آقا میگم آقا باید کار کنی دیگه یه چیزی رو ایراد میگیره یا میگه کارش خشنه عصبانیه بد بادم عرض میزنه بعضی از فقری فقیره بس خدا آدمه، این که اینه که هرکی فقیره خدا روزشو کم کرده، نه تمبله، نمیره سر کار امیر آقا لیسانس که نداشت، دکترا که نداشت، امیر المومنین کوه علم بود اصلا دیگه حجت خدا روزن، شغلش چی بود؟ این با شطور میرفت، تو زمین یهودی، نفرانی کار میکرد، آب میکشید هر دلی که آب میکشید میری یه دونه خورما بهش موز میدار الان شما میری من میرم میگن آقا شغل شما اینه بگیم آقا من فوق لیسانس دارم برم آب بکشم بریزم تو زمین بابا میکنم امیرون میکن خود شد علم مدین اتول علم علیون بابا. البابا اون آب آخر شب میشد سه کیلو خورما الان من بگم چه اونها ناراحت میشن الان ما آمارم نداریم چقدر افغانی تو کشور ماست یه دونه افغانی بیکار نیست نه بیکار نی اصلا وقت نداره به قول بده شما اگه تونستی یه افغانی رو آقا فردا ببری سر زمینت برات کار کنه من منبر رو ول می‌کنم میره الان بریم میگه بعد مارم از اون میاد میگه من یه جه من می‌خوام بکرم یه خوره یه کارا که افغانی بده ما بیاین اینجوری بکن لولمون رو می‌خوایم مثلا عوض کنیم نه میده گو من مثلا هفته بودم آقا آب داره میره تو میگی من گفت پس شب میام میگم آقا شب بیای که این همسایه‌ام مزاحمته آقا تو می‌خوای با کلنگ بکو شب گو وقت سه سجا قول میده همه کارم بلده ما خونه بغلیمون که میساخت به برقش که میرسید میومد میگه آقا برق شده به من هر کی قیمت داد من تر برات انجام میدم به لوله‌کشیش میرسید میگه آقا بده به من هر کی قیمت من پایین‌تر به نمای ساختمون که رسید گفت بده به من هر که قیمت داد من پایین تر میزنم یعنی هر کاری پیش اومد گفت بده من من از آنه پایین تر میزنم بعد من یه روز باشد صحبت ام گفت همه رو من تو ایران یاد گرفتم. و من وقتی اومدیم هیچی بدت نبود تو همینجا یاد کردم الان اصلا معماره. خب اما جوون های ما همه بیکاره. هم. خب خیلیش ما کمبلیه خیلیش هم میگم در شهن مانی آقا شهن چیه؟ به میگم امیر المومنی شغلشی اصلا کشور اینجوری اگه این افغانی ها از این کشور برن دیگه با چه به چه روزی میفتیم بکنم کارگر بشه روزی پونسه شیستد تومن تازه بیانم سه ساعت کار میکنم یا کمرشون میگیره یا دستشون در میره اصلا نمیتونم کار کنم که خب این کشور پیشرفت نمیکنه که تلاش، کوشش، ممکنه جوان ها بهشون بر بگاره حالا این مدرک چیه؟ بعد حالا این رو داره خب هیچ کاری که بلد نیست میگیم حالا چه کاری بلدی؟ میگه هیچی بغل لیسانسو داره الان من رفیق دارم آقا سی سال کارمند بوده بعد سی سال اومده بیرون میگه واسه بازنشستگی میجو میگم چی بلدی؟ میگه به خدایی چی؟ یعنی هم لیسانس داره هم سی سال کار کرده میگه هیچ کاری من بر نمیتونم بگم من چه کاری بردم که یه میگم خب مردم به چیه تو پول بدن باز برای یکی پارتی پیداشه بگه آقا بیا بیشه ما مشاور وایس مشاورم که میدونی یعنی چی مشاور یعنی چی به خدا آخرش بعد این بشه دیگه بعد بگم که آقا بیا اینجا مشاور وایس همینجوری رو به قفله وایسه به کاریش ارجاش بده میگم آقا تو الان خب پنج سال اینجا کاری به تو ارجاع شده گفت نه حقوق من که میاد کاری ارجاع نید آخرش میاد یعنی هم لیسانس داره هم فوق لیسانس داره هم سی سال کار کرده چی بلد نید خب آقا این که جلو نمیره اینجوری کشور کرد دوباره آمه این کارو میتونم انجام بدم، این کار رو میتونم انجام بدم. توجه بفرمایید. خردم حالا این است یکیش تلاشه یکیش کوششه لی امیر من آقا مردی رو در تاریخ بشریت ندیدم به اندازه علی تلاش کرده خدا خود اصلا شب و روز میدونید چون بریم بهش میگفتن این مونسش کلنگ و بیله یعنی هر وقت میبینیم یا بیل رو دوشش یا کلنگ رو دست داشته یعنی یه رو داره آباد میکنه الان دلم میخواد بریم مکه من اونجا میزدم گریم میگرد. این مسجد شجره که من رفتم محرمشم دیدم تابلو زده قبار علی خیلی برای من عجیب و سلمی ها زدن ها این ماله مال وحابی که ازم با علی میونه تابلو زده که اینجا قنات های مرتضا علیه یه خود آدم دیدم چقدر قنات گفتن اینا رو همه رو علی ساخته وقف کرده هنو هست به هنوز قنات های امیر المومنین هست فقرها میان آب بندرن میبن طولید سروت هم نمیکرد که پولدارشا همون نون جو بود که میخورد و همون کرباس بود که میبنی همه رو وقف میکرد خب این آدم چقدر کار کرده چقدر تلاش کرده چقدر دویده <تصفح> تمام دستش پینه بسته بود بس که تلاش میکرد کار میکرد مزرعه درست میکرد نمیدونم قنات درست میکرد همه رو به نفع پا به رهنه این این امیران مومنینه من نسیدم آقا مردی در تاریخ به اندازه علی تلاش کرده باشه کار کرده باشه به اندازه اونم عبادت کرده باشه حالا روزاش اونجوری بود شب هم میامد تا صبح من نمیدیم این چه موجودی بوده نجابه <تصفيق> بود ما بازنشهر من خودم الان میگیم بازنشسته شب میخوایم درکت رکعت پنج رکعت دو رکعت نماز بخونیم بیفت میگیریم کمرمون درد میگیره من بیکارم هستیم اون مردی که این همه تلاش میکرد الان جوان ها باور نمیکنن بعضی شب ها هزار رکعت نماز میخوند اصلا آقا یه چیز منحصربفرد دیگه وقتی میگونی از این داد تعجب میکنن آقا این مرد مگه بیکار بوده که هزار رکعت نماز میخوند نا اون هم هم روز تلاش میکنه. یکیشی نظر لی سلیل انسان الا ما این یکی از عواملیه که روزی رو زیاد می کنه میاد میگه آقا من چیکار کنم روزیم زیاد شه میگم تلاش کن دیگه خب تو یازده دازه از خواب بلند میشی تازه یازده بلند میشه دنگش میگیره قرآن بخونه خب بعضشون هم مذهبی هم متاسفانه <تصفح> چون میگه حالا میخواد وضوع میگیره میگه قرآنمو بخونم یه جوزمو بخونم آقا یه جوز چیه بیا برو دنبال کار آقا آقا یه جوز چی بخونی اصلا این به خدا این آدمو تاریخ میکنه این نه تنها آدمو نورانی نمیکنه این آدمو از خدا دور میکنه آدم بیکار چه قرآنی بخونه برو تلاش بکن چه قرآنی بخونی حضرت امیر وقتی آمد کوفه دید تو مسجد کوفه هم وقت وارد که شد دید یه عده اصلا همیشه اینجان. حالا ما داریم از اینا حالا اونا مسجدی بودن بعضی هییتیان. مثلا صبح هیته. من مثلا بعضی صبحا سه تا هیئت میاد یعنی هر سه تاشو میاد. بعد که من میام بیرون میگه که از اینجا کجا میری؟ <تصفيق> کجا میت میگم که دیگه میرم خونه میگه پس برم دنبال سید مجید اون فلان جو میگه ما می دنبالو تو زور برید اون این اومده دوباره عث بریم دوباره عث اومده اینجا دوباره شب بریم اون منبره الان اینا آخر من دیگه بات میگه الان هاجا کجا همین دم درک من میرم چرا می هاجا اینجا کجا میری میگم قبرستون اونا مسجدی بودن اینا هییتیان هم. <تصفيق> همه عمرش توی هیات خوب. خوبه هیات شیرینه ولی خب آقا تلاش بود در کوشش بود کرد بعد دوید خوبه اینکه بد می اینا من اینجا مسجد جاذبه داره شما بیایید مسجد مثلا بعضی مفاتی برشون جاذبه داره خب هر میخونه سیر نمیشه شیرینه دیگه بعد هیئت براشون جالب، بعد زیارت عاشورا براشون جاذبه داره، بعد فینه‌زنی براشون جاذبه داره. خب اینا ش... ناچ نگین، آره شیرینم، خدا نکنه مزذش ذی زبان کسی بیاد، دیگه نمی‌تونه ول کنه. یعنی اگه آقای بود اینجا میومد میگه من شبو شیفتم، دو ساعت مرخصی می‌گیرم میام اینجا. این اینا این شیرینه، ببینید. شیفتشو ول میکنه مرخصی می‌گیره، میگه آقا من دو ساعت می‌خوام برم بیت علی حسن، سینه‌مو بزنم، گریه‌مو بکنم، دوباره میگردم. این یه چیز پرجاذبه‌یه. اونا همونو دید همیشه تو مسجد هم حضرت فرمودن که اینا چی من هر وقت میامنه تو مسجد گفتم گفتن اینا زهاد کوفند گفتن اینا آبدای کوفند اینا... گفت یعنی چی؟ گفت شبا تا صبح مشغول عبادت روزام روز هم روز قرآن گفت خرجشون رو کی میده؟ گفتن ما میدیم به کی بدیم بخوره بهتر از اینا؟ هر هرچی میخورن نور میشه هرچی میخورن میشه میشهم. یه دوعا رو بکنم بسه. حضرت هم به خدا قسم شما از اینا بهتری. اقلا یه فایده ای داره اینا که بیخوااصیتن فایده ای نداره شما اا دو نفر روزی می که هیچ ده, ده که. رفت بالا این مضلوومیت امیرال معمله نمیگو من اینجوری میگم حال من بگم شری میشه. می از پیغمبر بر شد این اگه میگو من اینجوری میگم میگو آقا تو بگی میگو از پیغمبر شنیدم هر کی کل بر مردم باشه ملعونه مر... از رحمت خدا بدوره اون مادام که من تو کوفه نمیذارم مسجد مسلمین جایی همچین آدمایی هایی اومد از منبر کنیم با این تازیانه میزد همه اینا رو بیرون میکن میگو برین آقا کار کنین یعنی چی خرج شما دیگران میدن چرا بارتو رو دوش مردمه بونو کار کن به این توجه یکی تلاشه یکی کوششه اونی که میخواد روزیش زیاد و باید تلاشش زیاد کنه تلاشش ز... بعد تنبلی رو بذاره کنار این تو شان من نمیذاره کنار من خودم حالا آقا... دیگه ببین از خود ستایی نکنیم بنش از اون از این یکی آدم باید تلاش کرده اما چند مطلب بعد از این میگم عوامل معنوی که روزی آدمو زیاد میکنه یکی احسان به پدر مادره. به آدم به پدر مادر نه شما بعد از میگی میگه آقا من دستشو میبوسم آقا می اون یه عامل دیگه انبلی میکنید کار نمیکنید اونو بعد درست کنی. موبین اونو گفتیم توجه <تصفيق> این یه عامله من یه کردن نشده. نشده یکیشینه یکی از چیزایی که آقا روزی آدمو رو زیاد میکنه احسان به پدر و مادره یکی از چیزایی که روزی آدمو رو زیاد میکنه سله رحمه حالا یکی میگه من س... بله اینا یه عامله داریم میگیم یکی از اونهایی که روزی آدمو رو زیاد میکنه نماز اول وقته نمازش رو اول وقت بخوند به نحب نیکو بخوند روز... یکی از چیزهایی که روزی آدم این که آدم همیشه با وزو باشه همیشه با تحارت باشه این روزی رو زیاد میکنه. بعد روزی هم یه چیزی برای جوان ها بگم فقط هم پول و اینا نیست با. حالا ما داریم میگیم فقط هم پول نیست. بعضی هم میان میگن آقا ما هرچه آدمیم مثلا کافر و ملحد و مشروب خور میبینیم روزیش زیاده. هرچی آدم مومن می‌بینیم، این فقیره میگه من میشه این حرفایی که شما میدهی ریشه ای ندارد اولا آقا اونی که شما میگی کافره شب تلاش زیاد میکنه شاید اون شیش صبح میره دوازده شب میدوه شما که نمی کنی که اولا سانیان روزی که فقط مادیات نیست که خدا به عزرت امیر یه زنی مثل فاطمه زهرا روزی کرد. عم چیز این روزیه دیگه آدم یه زنی مثل حضرت زهرا داشته باشه یه بچه های مثل امام حسن و امام حسین یه پدرزنی مثل رسول خدا داده این روزیه دیگه همین جور بشمورد دیگه چقدر از اینا روزی همین که شما اینجا بیای یه ناله برای امام حسین بزنی روزیت بوده دیگه نیمه شب دیگه شما نیمه شب بلند بلند, بلند برای حسین بن علی گریه این روزی نی همین روزه تونستی تا امرو بگیری روزیت بوده بعضی روزیشون نبود مریض بودن نتونستن بگیرن شما روزید روزی روزی وسیع از مادیاته خیلی به مادیات اکتفا نکنی اینشالله کربلا بری روزیت خدا قسمت کنه دو الان شما رو به طلبن فت بری کربلا این روزی مشد بری روزیته اونجایی که الان بعضی جوان ها دلشون شکست عشقاشون ریخ و صورتشون روزی دیگه این, این کلیفت بسیعه اینکه شما همیشه با تهارت باشی روزیت زیاد میشه اینکه انسان سرخیز باشه و بعد از نماز صبح نخوابه روزی... یکی که روزی رو کم میکنی بعد نماز صبح بخوابه خیلی این روزی رو کاهش میگه حالا شما مادی و معنی روزی میراندم بینو و طلوعه این بیدار باشه و دیگه نخوابه همین که آدم میخوابه کسل میشه خودش میفهمه که اصلا, اصلاً دیگه میاد بیرون میگه زور شد دیگه میگه دیگه اصلا همه وقت واقعا بیبرکت میشه روز روز بیبرکت میشه روزی انسان به کاهش بیدا میکنه اینکه آدم بعد نماز صبح نخوابه بره دنبال روزیش اینکه انسان همیشه اینکه خدمت به مردم کنی مردم دعات کنن همین شما کارمند کارمن همین شما یه خدمتی به مردم کنی اینا دعا بگن همین یه کلمه بگن آقا هرچی میخوای خدا بد بده روزی زیاد میشه بذار یه جوری زندگی کنین جوانا دعا پشترتون زیاد باشه خدا این خیلی زرنگیه همه بگن که هرچی میخوای جوان خدا بد بده این اینکه این برکت ایجاد می‌کنه چطور ممکنه این همه دعا پوش سر کسی باشه به برکت ایجاد نکنه اما خدایی نکرده آقای یه جوری زندگی نم نفرین وای باشه بگن ان زمین بخوره ان شاءالله این میگه این همه نفرین پوش من یه اداری رفتم با یه آقای کار داشتم کارم گیر بود دیدم هر کی میاد به این بدو بیرو میگه به این آقایی که ما هم خیلی اذیت می‌کرد راستش را نمیداد من دیدمش گفتم آقا یا کار ما انجام میشه نمیشه اینا مهم نیست اما پشت سر تو نفرین زیاده بد زندگی میکنی. یه دفعه ترسی جا خود دارد. گفتم به ترس این همه نظر می... من نمیدنم تو خوب کار میکنی بد کار میکنی ولی من این پشت در نشستم میدنم همه به تو بد و بیران میگن. کارمندای اینجا به تو بد و بیران میگن. همین زیر دستای خودت از به تو بد و بیران میگن. تو بد زندگی میکنی. آدمی بعد آقا یه جوری زندگی کنه دعا پشت سرش زیاد باشه. همه میگن آقا خدا خیرش بده. خدا رو به خیر. خدا هرچی میخواد بهش بده. آقا مگه میشه این همه دعا پشت سر کسی باشد و این برکت ایجاد نکنن. این توجه ببیند. یکی دیگه از چیزهایی که روزی رو زیاد میکنه توبه است استغفاره گناه روزی آدم رو کم کرده همه که میگه خدای قلط کردم میگه خال پیدا کرده خدا اگه مانه روزی من گناهامه، بگذر به بدیمون ما رو معاخضه نکن بله این گناه مانه شده راوی اومد گفت بیدارم میشم سهر برا نماز شب اما انگار دوتونم. اصلا نمیتونم از جا کندهشم دوباره خوابم میبره حضرت گناه های روز شما رو سنگین میکنه ولی گناه آقا روزی آدمو کم میکنه یه وقت امام حسین اسم شما رو مینویسه برید کربلا وقتتون رو نمیگیرم یه وقت یه کار قلم میگیره چم میکنید میگه میکنی. یه دفعه اسمم تو میره بیرون من ما دیدیم آقایون من آدم دیدم که آقا اومد پولش رو داد پاسش رو داد همه رو عمر رو عمر رو همین سه روز مونده بود حرکت کنه اومد گفت یه کاری برام پیش من دیگه نمیتونم بیام گفتم آقا جریمه میکنن سازمان حج الان ویزات رو گرفتن گفت نصف پولم هم کم کنن من نمیتونم بیام رفتیم گفتین من یادم نمیگفتن چقدرش رو کم میکنن کم کردن یعنی هم شما در نظر بگی، هفت سد تو من پولش رفت هم چهارو نتونست بیاد یه باید آقای یه کاری میکنه اسم تو قلم میکنه نه. یه یکی نبود امام حسین اون رو جاش مینویسه <تصفح> <تصفح> یه باید یه کاری کرده امام میگه این بیاد جاش روزی آدم کم به قاطع اگه یه وقت پا داد استغفار توبه باید بگیم خدایا اگه این گرهی ای که تو زندگی ما خلو مال خیلی جاها مال گناه هاست. خیلی جاها مال گناه هاست. همون که استغفار میکنی, توبه میکنه در باز میشه. استغفرو ربکم انهو کان قفارا. خدا میگه آقا شما چرا استغفارو من که میامورزم که چم <تصفيق> میکنی من که میامورزم تو چرا استغفار نمیکنی خب بکنیم چی میشه یورسل سماع علیکم متراب بعد میگه من آسمون بارون به شما نازل و و کن به اموال و بنین مالتون رو زیاد میکنم پتراتون رو زیاد میکنم اولادتون رو زیاد میکنم و یجعلکم جن... انهارن جناتن و انهارا باقاتون رونق میدم نهراتون رو آب میکنم خوشکسالی رو برطرف میکنم کمبود آب و خدا میخواد بگهد که همه اینا از گناهه پاداد داد استغفار توبه آلا من تا اونجایی که تونستم نوشتم یکی دیگه, دیگه صدقه صدقه این که آدم آقا صدقه بده روزیش زیاد میشه. که اخلاق خوش، آدم بد اخلاق آقا روزیش کم میشه، آدم خوش اخلاق روزیش زیاد میشه. شما اگه آقا یه جوری از خونه بیای بیرون، مادرت ازت راضی باشه، بابات ازت هیچ هم نگه، همین وقتی شما میای بیرون تو دلش بگه که پسرم برو خدا به همراهت، روزیت زیاد میشه. اما دل مادرتو بشکنی بگی همه درو در رد پاستی. زن و بچه هم می اینطوره نام شما وقت از خونه میری بیرون خانومت پشتلت میگه که هرچی میخواد خدا بهش بده شاله. از دلش راضی هست شما دیگه روزی زیاد میشه یه وقت اونو میچه زونیو میری درها رود بسته میشه روزی هم کم میشه نمیشه آقا ما حقوق دیگران رو زیر پا بذاریم و خدا درهاش رو ما باز کنند این نمیشه هست درجه. حالا یه وقت مادر با مادر زندگی میکنه یه وقت با زن زندگی میکنه یه وقت با شوهر زندگی میکنه اینا اواملیه اینا که آقا روزی انسان رو زیاد میکند اونقلی که تونستم گفتم دیگه ما هم تبعیت کنیم نم... من نمیخواستم اما دیگه امشب من هم دلاتونو ببرم در خانه سه ساله عبی ابترناد <تصفيق> خدا بعضی جوانان نگفته گریه کردم من دلم شکست <تصفيق> معنی چی نگفتم زدم زیر گریه آفرین به این محبت ولی یکی از چیزایی که روزی رو زیاد میکنه محبت اهل بیته خوفز اگر قدم زنیم در راه خاندان به صدق بدرقه رهت شود همت شهنه نجب یه شب تو این ماه اینجا گفتم بعضی میگن هر کاری کرد امام حسین با این دختر سه ساله خداحافظی کنه نتونید. عجیب راه رو به عبی عبدالله گرفته بودیم. اون اون هم که اینجا این روزه رو خوندم گفتم بعضی پدرات با محبت هم درم دیدین من اینجا گفتم این به بچه زیاد محبت میکنه. گاهی میخواد بره این دختر مثلا روز جمعه از خونه، از. میخواد بره مسجد نماز بخونه بیاد. میاد دم در وای میسته. درو میگه که نماز تو خونه بخونه میگه همه هفته که سر کاری دیگه حالا یه جمع اینجا خونه. میگه من زود میام، یه ربه میام، 10 دقیقه‌ای میام. میگه نه. باز وقت دیدین ما داره که یه لطفی به این پدره بکنه. این بچه رو میبره تو آشپزخونه مثلا یه لباشکی پفکی عروسکی یه چیزی اینو مشغولش میکنه بابا میبینه که این مشغولشه کتشو میبوشه فرار میکنه می این دروغا میگه میره حالا اگر این پدر یه ماموریت یه ساله بخواد بره کار سختره من اگه بخواد یه سال نباشه شش ماه نباشه اگه بخواد برا همیشه بره <تصفيق> اینا دیدم اینا بچه ها میدن قاسم رفت نیومد من روم نمیشه میگم نه. نه اومد جنازش اومد <تصفيق> خدا روم نشده اکبر رفت رو دستاوردنش افباس رفت دیگه برنگشت گفتم بابام بره دیگه بعضی میگن اصلا کلافه شده مام آخر میگن همون کاری رو کرد که پیغمبر با فاطمه زهره کرد بی, بی هم خیلی بیتابی میکرد خیلی اصلا آخر پیغمبر گفت این بچه این دختره من یه وقت پس نیفته صداش کرد گفت دخترم بیا بیا بیا گوشتو بیا تو گوشش یه چیزی گفت وسط گریه بیبی بی خندی به زهر زنا اومدن گفتن آخر چی گفت پیغمبر اونجور گریه می‌کردی گفت بابام به من میگه تو اونقدی نمیکشه به من ملحق <تصفيق> و اصل این امت به تو امون نمیدن بعد از من نفس بگوشی اولین کسی که از اهل بیت من به من ملحق میشه تو هست بعضی هم میگن امام حسینم تو گوش این دختر گفت دخترم خرابه شام میام تو رو میبرم تو فقط تا شام تحمل بعد از این دیگه این دختر هی به اممه میگفت خرابه کجاست شام کجاست کی میرسیم شام کی میرسیم خرابه مثلا ادم دارم 20 منظره دیگه 20 شب طور کشید تا خرابه بیان تو این 20 شب یه جا نبوده این دختر بیتابی کنه یه جا بزن این جور بری اینجا باباش بهش قول داده بود وقتی گفتن اینجا شامه حالا یه دختری که خیلی معذرت میخوام تازیان خورده است بدنش کبوده دندونش شکسته <تصفيق> این میگه بزا امشب بابامو ببینم بذار بابام بیاد صورتمو نشونش میدم موامو نشون میدم دندونامو نشون میدم پامو نشون میدم بدن کبودمو نشون میدم این دختر میخواد بابا رو ببینه ناز کنه خدا شاهده اگر حال داشت این دختر این بیشتر از این نتونست بگه دق کرد تا صبح میگفتم اون نمیشد تا صبح درد دل کرد حرفش اما نتونست بگه وقتی این سر و آوردن رو رو, رو این دختر گذاشتن همین روپوش و زد کنار تا چشمش به این سر داد دید وعض باباش از خودش هم بدتره دیگه روش نشد بگه صورتم بگه پام بگه کمرم هی میگفت بابا کی رگای تو رو بریده کی تو رو به این روز انداخته من اللذی قطع وریدک من اللذی خذ زبکه بده یه وقتی در این دختر خم شد این لبها رو گذاشت رو لبهای های ها!